سرمشق توسعه ما معیوب بود اقتصاد، نفت، زرنگی، فساد و باقی غذایا. دوره پهلوی دوم با آثار و پیامدهای جنگ جهانی دوم آغاز شد قحطی شدید و فراگیر، شیوع بیماریها و فقر عمومی از دیگر مشخصه آن دوره است شورش ایلات واکنشی به سیاست های اسکان بود تضعیف انحصارات دولتی به جای تقویت بخش غیر دولتی مولد به طور عمده به صفت بازی و فعالیت‌های دلالی منجر شده بود. طی دهه 20 و به ویژه نیمه دوم آن، روی کرد اتصال ایران به اقتصاد آمریکا در برابر رویکرد سنتی مرتبط با انگلستان تقویت شد. تیم احمد قوام در مقابل گروه های نفوذ سنتی شامل انگلیس فراماسونها، درباریان و غیره بود که به قائل‌ها و شورش‌ها دامن میزدند. تعارضات و واگرای های اجتماعی هرچه بیشتر شدت یافت. برای این وضع زمینه های اقتصادی کافی وجود داشت، مانند نابرابری های فاهش که بر بیگانگی ها شدت می‌بخشد. رشد عظیم اقتصادی در سدهه بعدی نیز نتوانست، به صورتی متوازن برای گروه های مختلف مزیت ایجاد کند در پایان دهه چهل شمسی حدود یک نیم درصد جمعیت از سهمی بالغ بر سی و پنج درصد درآمد ملی برخوردار بودند جامعی را تصور کنید که در آن رشد اقتصادی اتفاق بیفتد اما خروجی رشد به صورت فرصت های برابر برای قیش مختلف اجتماعی فراهم نباشد این امر منشأ بیگانگی گروه های اجتماعی نسبت به هم و افت سرمایه اجتماعی یعنی همدلی، پیوند، اعتماد متقابل و همکاری می شود. یکی از علل ناسازه همکاری در ایران همین بود. احساس محرومیت مانع دلبستگی و پیوند مثبت و سازنده پایدار اجتماعی شد. الگوی عمرانی کشور، بر های خارجی مبتنی بود که به ویژه برای اجرای برنامه دوم از آن بهرهبرداری برداری شد. طی سالهای بعد افزایش درامت نفتی موجب وابستگی روزافزون به این درامت شد. درآمدهای نفتی ایران در سال 1323 حدود 22 میلیون برابر با 22 هزارم میلیارد دلار بود. در حالی که در سال 1342 این شاخص، به نیم میلیارد دلار رسید و در سال 1355 حدود 20 میلیارد دلار شد. رشد سرمایه‌داری متکی بر نفت با حکومت سالاری و اقتدار دولتی همراه شد به شکلی که 66.5 درصد منابع مالی برنامه سوم از درآمد نفت می شد. در سال 1352 سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد کشور به 89 درصد رسید. به بیان دیگر دولت با منابع مستقل از جامعه و به طور مشخص نفت روز به روز مطلق الانان میشد از همین جا تعارضی میان مقتضیات دو جریان امنیتی ها در ارتباط با سیا و وزارت دفاع آمریکا و ساواک و دربار و توسعه ها یعنی دانشگاهیان تکنوکرات ها و متخصصان متجمع در نهادها پدید آمد تسلط دولت بر اقتصاد کشور فرهنگ قیمومتگرائی را می میکرد. بیشتر سرمایه داران به دلیل همین زمینه تاریخی آمادگی مواجهه با ریسک و مخاطر را نداشتند و مایل به دلالی و سودهای آسانیاب بودند. فراساخت جامعه ایران آسیب دیده بود. فراساختی مرکانتلیستی را تصور کنید که بر داد و ستت تجارت و مالکیت آزاد مبتنی است و زمینه مساعدی برای هویت فردی و استقلال نظر و روحیات مثبت انتقادی فراهم میآورد این وضع را در کشورهای توسعه یافته از نوع آنگلو آمریکن میبینیم در حوزه کنفوسیوسی هرچند این نوع فراساخت مرکانتلیستی را نمیبینیم در عوض یک فراساخت نیرومند دیگر یعنی مالکیت و تعهد جمعی وجود دارد و با خود نوعی همدلی، همکاری و تعهد جمعی پدید می هیچ هیچیک از این دو وزد در کشور ما مجال نهادین شدن نیافت. نه آن نوع فراساخت که واجد رقابت، مسئولیت فردی و پیشرفت است که با خود اخلاقیات اجتماعی آزادمنشانه را توسعه می دهد و نه آن فراساختی که تعهد و یک جمعی را به همراه دارد. مدیران سازمان های کار، صنعت و خدمات حقوق بگیر دولت بودند. این وضع، کیش شخصیت و تملق و عدم استقلال فکری و از بین رفتن فردیت و عزت نفس و عدم تعهد به منافع جمعی را تشدید کرد و عدم رشد سرمایداری ملی از بینرفتن روحیه ریسک پذیری، کاهش مخاطر جویی، ضعف در ارزش سالم رقابتی و زوال پویایی و تحرک و اعتماد به نفس را با خود به همراه آورد. چنین اقتصادی منشأ روحیاتی می شود که یک طرف آن قیمومت طلبی دولتی، زندگی زیر سایه دولت و سازگار شدن با آن و طرف دیگرش سرنگون کردن فرصت طلبانه دولت است. گذشته از این حکومت اجارگیر با درآمدهای آسان می مردم را دور بزند و مشارکت مردم را بلا موضوع کند. در جامعی که مردم به مشارکت عادت ندارند، طبیعتا تمرین کار جمعی، تحمل یکدیگر و گفتگو با هم و تمرین توافق و اجماع با دیگران وجود نخواهد داشت. در چنین بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نباید انتظار داشته باشیم انسانها به سهولت با هم توافق کنند و یکدیگر را به آسانی تحمل کنند و همدیشی و همکاری در عین داشتن اختلاف برای آنان امری متعارف باشد. وقتی ساختار اقتصاد سیاسی مشارکت‌جو نیست، طبعا مشارکت تمرین نمی شود، خلقیات و های مشارکتی نهادینه و درونی نمی‌شود و گفتگوی اجتماعی توافق اجماع تحمل و انتقاد انتقادپذیری توسعه نمییابد فساد مالی از جمله مواردی است که از دهه سی خود را در اقتصاد ایران نشان داد وقتی گذاری خارجی صورت گرفت های خارجی ثبت شدند و وامها و درآمدهای نفتی وارد سیستم غیرشفاف و غیر دموکراتیک شد از آنجایی که سیستم ساز و کارهای خود نداشت، بر اثر مزایده ها و مناقصهها و مقاطع فساد شدیدی پدید آمد. یکی از واکنش های این وضع قانون از کجا آوردی دوره اقبال بود که البته آن هم با برخی تصویه حساب های سیاسی بین گروه غیررسمی مرتبط بود. اصلاحات ارزی گزار رسمی اقتصاد کشور از مناسبات روستایی و ارباب رتی ناکارآد به مناسبات سرمایهداری معیوب و نیمبند شهری بود. متاسفانه در اصلاحات ارزی به گونه ای عمل شد که روستاهای ایران را متحول نکردیم و توسعه ندادیم بلکه مزمهل کردیم و از بین بردیم. در غرب توسعه از طریق نقد و تغییر نهادهای موجود و اصلاح و توصیه آنها اتفاق می‌افتاد اما در ایران وقتی سراغ روستاها آمدند سرشت طرح به گونه‌ای بود که روستا از بین رفت و دفرمه شد طرح اصلاحات عرضی نتوانست مدلی حقوقی برای تثبیت مالکیت عرضی در روستاها ایجاد کند بخشی از روستاییان که قرارداد سهمبری سنتی نداشتند نتوانستند مشمول اصلاحات عراضی شوند مالکان با استفاده از سیستم و ساختارهای حقوقی ضعیف و بوروکراسی فاسد و ناکارآمد می بسیاری از حقوق دهقانان را تصاحب کنند از یاد نبریم که در ایران چیزی به منزله مالکیت خصوصی درست حسابی بر زمین وجود نداشت آنچه بود نسقبری بود روستا یکی از سه بخش اقتصاد در ایران یعنی ایل، روستا و شهر بود. روستا بر یک جماعت اشتراکی مبتنی بود که در آن مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشت. روستایی هیچ وقت مالک زمین نبود، بلکه نسقبر بود. بر اساس کار روی زمین سهم و نسقی داشت و بر زمین تا اطلاع سانوی تصرف می کرد. عدم تعیون وجود داشت. زمان تملک قابل پیش بینی نبود و معلوم نبود روستایی بیچاره بتواند مالک زمینی باشد، مازاد تولید داشته باشد، رقابت کند و توسعه اتفاق بیفتد. این وضع سنتی و پیشینه روستا در ایران بود. بعد هم که اصلاحات عرضی شد، به شکلی آن را اجرا کردند که لوازم و دستاوردهای لازم و مطلوب را نداشت. مثلا کشت و صنعتها یا شرکت‌های سهامی زراعی از یک سو بوروکراتیک و ناکارامد بودند و از سوی دیگر فاسد بودند و در عمل اقتصاد روستایی از طریق اصلاحات اراضی تقویت نشد و توسعه نیافت و تحول مطلوبی پیدا نکرد بلکه از بین رفت در روستا اقتصاد پولی ایجاد نشد زیرا اقتصاد روستا، اقتصاد محصول و مبادله محصولات بود، راه های ارتباطی یا حمایت های مؤثر ساختاری که بتواند روستا را به مسابه بخش بزرگی از اقتصاد ایران توسعه دهد و از این طریق ارزش افزوده و ثروت ملی ایجاد کند وجود نداشت و توسعه یعنی توصیه فرهنگی و اجتماعی شکل نگرفت. صنایع دستی روستایی به کلی از بین رفت در حالی که می‌توانست منشأ کارگاه‌ها و بعدتر کارخانه‌ها باشد اما هیچ از این اقدامات به عمل نیامد دولت صنعت مونتاژ را دنبال کرد و روستاییان هم مهاجرت را در دستور کار خود قرار دادند و حاشیه شهرها شدند و کارگران بدبخت زندگی معیشتی سخت خود را به شکل بدتری این بار در شهرها ادامه دادند شهر از یک اقتصاد مولد درونزا و مبتنی بر دینامیسم اجتماعی درونی به وجود نیامد، بلکه بر یک اقتصاد نفتی آسیب پذیر متکی بود و در نتیجه با خود آنامی های رفتاری و آثار اجتماعی و فرهنگی مختلفی به همراه آورد. نتیجه این وضع، جا جمعیتی، مهاجرت روستاییان به شهر و ازدیاد هاشی نشینی به ویژه در چند شهر بزرگ بود. در این وضعیت دفرمه، کنترل‌های اجتماعی سنتی که روستاییان بر اساس بافت و الگوی زندگی روستایی با آن خود گرفته بودند، دیگر وجود نداشت و این به بیهنجاری ها و مشکلات رفتاری انجامید. تقسیم زمین های دولتی هم که می توانست به رشد خورده مالکی کمک کند به علت فساد، دیوان سالاری، رشوه و غیره موفق نبود. مثلا زمینی می دادند اما آب نمیدادند بگونه ای که حتی روستاییان به فروش زمینهایشان یا رها کردن آن مجبور میشدند. مسئله مهم دیگر نفت است که پیشتر به آن اشاره کردیم. شاید چندان اقراق نباشد اگر بگوییم خلقیات معاصر ما تا حدود زیادی بوی نفت میدهد. نفت منبع درآمد مستقلی برای حکومت بود که میتوانست با آن جامعه را دور بزند. دریافت نفتی سرمایه نبود که وارد اقتصاد شود بلکه پول بود. در یک اقتصاد در حال گذار که دولت همکاره آن است، ورود چنین دریافتی‌های خیره‌کننده ای آسیب‌ها و پیامدهای مخرب فراوانی به همراه داشت. این وضع نه فقط مانع رشد بورژوازی ملی شد، بلکه از رشد بورژوازی صنعتی و حتی تجاری هم جلوگیری کرد. ورود این پول خاص به اقتصاد ایران سبب بازی زد و بند شد. جامعهای فقیر و قهتی زده بیماری زده خشک زالی زده و غیره در محیطی کدر، غیر شفاف غیر پاسخگو غیر رقابتی و با انحصارات بزرگ دولتی یکباره با حجم عظیم پول در چنین میدان نامساعدی مواجه شد در نظر بگیرید افراد چگونه برای کسب این پول وسوسه میشدند به مراکز قدرت تقرب جویند به این ترتیب بازاری با ویژگیهای اقتصاد رانتی بازار سیاه، اقتصاد غیر مولد و اقتصاد دلالی شکل گرفت. کافی بود زمینه کوچک در شخصیت افراد باشد تا بوی نفت به مشامشان برسد و وارد این زد و بندها شوند و این همان روحیه است که برخی نویسندگان از آن به زرنگی تعبیر کرده‌اند. نفت خلق و خوی زرنگی ایجاد کرد. اینکه چگونه از طریق کوریدورها و دالانهای بوروکراسی فاسد و حوزه روابط و نفوز غیررسمی رسمی میتوان با قدرت و پول نفت مرتبط شد و مجاری آن را شناسایی کرد و از این نمد کلاهی برای خود دوخت. این وضع منشع فرصت طلبی هایی شد که خود را در فرهنگ ایران تولید کرد. منشع قیمومت طلبی ها. در فرهنگ ایران افراد به دنبال قدرتی هستند تا به آن تکیه کنند. دنبال یک گروه غیررسمی که بتوانند سهمی از طلای سیاه به چنگ آورند. ایوب و نارسایی‌هایی که در سرمشق توسعه ما وجود داشت، نه تنها مانع از آن شد که خلقیات اجتماعی از راه گذر توسعه به اندازه کافی ارتقا پیدا کند، بلکه خود مشکلاتی نیز در روحیات و اخلاق اجتماعی به وجود آورد. برای مثال، وقتی طبقه حاکم از طریق وساطت در عقد قراردادها و رانتها به آلاف و اولوف می رسد، در عمل نوعی زرنگی منفی ترویج می شود. مردم به تدریج یاد می گیرند، فرصت طلبی پیشه کنند و از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. فقدان شفافیت در نهادها و روابط روحیه کیبکیه را در جامعه اشاعه میدهد در این شرایط معمولا انتظار میرود بی باوری به هر چیز و هرهوری رشد کند سیطره رویکرد امنیتی و دخالت دستگاه اطلاعاتی کشور حتی در اقتصاد مردم شرایطی به وجود می آورد که مردم میگویند دیوار موش دارد و موش گوش دارد فاصله گفتارها با حقایق بیشتر می شود. مردم پشت صورتک ها نقش بازی می بیاعتمادی بی شیوع پیدا می کند. فرهنگ پشت هم اندازی و جنگ همه علیه همه شکل می گیرد و این وضع ناهم اجتماعی را تشدید می کند. با تسلب و توفق ناشی از دریافتی های نفتی دولت، جایی برای فضای عمومی و تمرین همزیستی، همکنشی و هماندیشی نمیماند. خشونت، حصف و براندازی بر گفتگو و تعامل آزادمنشانه چیره می شود. منازعه و مشاجره به جای مکالمه و گفتگو می نشیند. عادتواره های کنش ارتباطی و مفاهیمه میان ذهنی رشد نمی کند. جای آن را سوء تفاهم گسترده میان دولت و مردم و نیز گروهها و اقوام با یکدیگر می گیرد. و فرایند توافق و اجماع بسیار دشوار می شود. میدان برای بازی برنده برنده فراهم نمی شود. بازی های برنده بازنده و در نهایت بازنده بازنده رواج می یابد این شرایط ساختی کار کردی زمین را برای رشد خلقیات خاص فراهم می آورد. در ایرانیان به هستی هستیهای انسانی مثل سایر مردم جهان از جمله در اروپا و آمریکای شمالی استعدادهای سرشاری برای خلقیات مطلوب وجود دارد در فرهنگ دیرینه و عظیم ایرانی قابلیت‌های رفتاری و اخلاقی کم نیست اما شرایط تاریخی ساختاری زمینه‌ای و نهادی اغلب برای رشد اخلاقیات مثبت و منسجم اجتماعی نامساعد بود و برعکس برای ظهور و گسترش روحیات و خلقیات منفی مساعد بود چگونه به تعبیر سیولینیو مردمی معدب در پس همه تعارفات مبالغه آمیز خود درویی میورزند و دروغ تحویل هم میدهند و از انتقاد دیگران درباره خود میرنجند و نسبت به انتقاد به دیگران حضر دارند چرا تعریف و تملق در حضور یکدیگر و غیبت بیرحمانه در قیاب هم بین آنها رواج دارد؟ سیاق بحث و استدلال ما تا اینجا دلالت می‌کند که این امر ناشی از چیزی مبهم با عنوان ذات ایرانیان و روح ایرانی نیست، بلکه محیط نهادی موجب شده در آنها چنین عادتوارهها و الگوهای رفتاری به شکل ناخودآگاه رشد کند. و به ویژه در جامعی با جمعیت جوان آموزش پذیر میتوان با اصلاحات نهادی امید تحول داشت افلاتون فلسفه تربیتی خود را در اسنای فلسفه اجتماعی و سیاسی به میان می آورد مهمترین مباحث تربیتی و اخلاقی افلاتون را در کتاب جمهور و قوانین او می خانیم نیز، در دو بخش آخر کتاب سیاست خود از اخلاق صحبت کرده است. پرورش بشریت نیازمند محیط نهادی، قوانین و سیستم مناسب است. از تعارض ساختی کار کردی تا آشفتگی در نظام هنجاری جامعه در فصل پیش ملاحظه کردیم تجربه مدرنیته شهری شهری می میتواند به رشد طبقه متوسط جدید و ارتقای خلقیات اجتماعی کمک کند. برای مثال تعمیم آموزش به اجتماعی شدن مردم کمک میکند. سرشت مدرنیته همچنین واجد نوعی تکثر فرهنگی است. به بیان دقیق تر در مدرنیته این امکان وجود دارد که افراد مدارا را یاد بگیرند، یکدیگر را تحمل کنند و در انسانها به گونه های مختلف زندگی می کنند و به اشکال گوناگون می اندیشند. مدرنیته درک تازه ای از لذت، زیبایی شناسی، خلاقیت و معنا می دهد. فهم هنجارهایی مانند حقوق بشر، آزادی زنان و حقوق شهروندی یکی دیگر از آثار مدرنیته است و ظرفیت آن را دارد که خلق و خویی فراسوی پدر سالاری و تحکم، خشونت، سرکوب و ارزش های تک و تک و انحصار ایجاد کند. فضیلت‌های های مدنی، نزاکت و آدابدانی از دیگر عناصر مدرنیت است. افراد یاد می‌گیرند از محل های خدکشی شده عبور کنند و در برابر چراغ قرمز به دولت پهلوی دوم از یک سو کارگزاری مدرنیزاسیون در ایران را بر عهده داشت و از سوی دیگر ساخت سیاسی آن همچنان پیشا مدرن بود. این امر منشع نوعی تعارض ساختی کار کردی بود. نتیجه این وضع آن شد که دولت نتوانست کمک پایداری به گزار جامعه و مدرنیته ایرانی کند. دچار تسلب و انصداد شد و نتوانست با سایر کارگزاران اجتماعی و واسطه تغییر در سطح ملی تعامل مثبتی در پیش گیرد. در نتیجه نوسازی دولتی از زمین سازی موفقیت آمیز برای تحول جامعه باز ماند و تحول طبیعی پویا و درونزار را شاهد نبودیم. نوسازی بیشتر از بالا و با الگوهای وارداتی انجام می شد. دولتی عامل مدرنیزاسیون بود که به سبب اعمال خود به طور مرتب برای جامعه دیگری می شد. نوسازی با توجه به ظرفیت های بومی جامعه جذب و درونی نمیشد و چه بسا پس زده می شود. بسیاری از مردم هرچند در ظاهر از کال و محصولات مدرن استفاده میکردند با روح و مبانی مدرنیته بیگانه بودند و چه بسا برخی از کارکردهای مدرنیزاسیون را جذب نمیکردند. هنجارهای مدرن با هنجار های سنتی استکاک پیدا می کرد. این گسست مطلق میان سنت و مدرنیته برای کشور مشکل ساز شد و بعدها ها های وحشتناکی به ورد. چنان که پیش در نیز ذکر شد در واقع مدرنیزاسیانی بدون تجربه مدرنیته داشتیم و در نتیجه عادتوارهها اخلاقیات و هنجارهای مردم سنتی با ترتیبات مدرن ناهمزمان بود. تنظیمات و تأسیسات مدرن گسترش میافت بدون آنکه نگرش های مردم پا به پای آن مدرن شود این مدرنیزاسیون به جای بست روحیات و خلقیات منشع آشفتگی در ارزش های متعارض فرهنگی و اجتماعی مردم شد شکاف میان سنت و تجدد هر دو را آشفته کرده بود سنت آشفته با هنر مشکل داشت وقتی تاکسی سوار می شدی، سر پخش موسیقی دعوا بود. آزادی زنان و حقوق اقلیتها محل اختلاف بود. اصلاحات عرضی محل مناقشه بود و کاخ جوانان به مسابه خانه فساد تلقی می شد. تجدد آشفته هم به اوریان نمایی تقلیل می آفت. در یک سو شاه پرستی بود با همه ی خلقیات خودمانند تملق، نوکر سفتی، چاکرمنشی و در سوی دیگر فرهنگ دولت ستیزی و شورشگری علیه دولت تقدیس می شود. در امواجی از ایدولوژیهای های سنت و تجدد نهادهای اجتماعی تخریب می شود. در یک سو باستانگرایی مفرد و در مقابل آن اسلامگرایی مفرد اشایی میشد. در یک سو قرب زدگی بود و در سوی دیگر قرب ستیزی. در یک سو مصرفگرایی مبتزل رواج داشت و در سوی دیگر مالکیت ستیزی اشائه می شد و ثروت تقبیه می شد. یک طرف ولنگاری و بدمستی و عربدکشی و ایجاد مزاحمت برای بانوان بود و منازعات و چاقوکشی در عروسی و در طرف دیگر ریاضتگرایی تقدیس می شد و لذت تابو بود. از یک سو محدودیت‌های مربوط به پوشش دختران در مدارس به منزله مدرنیزاسیون بود و در سوی دیگر خانواده‌هایی که دخترانشان را از درس خواندن منع می‌کردند. یک طرف جریمه نقدی برای عبور از جاهای خدکشی نشده و طرف دیگر بیگانگی مردم با ترتیبات و دستورات و نزاکت مدرن شهری در یک سو تحجر، نوگوریزی، نوستیزی و شکاف بین نسلی و بین گروهی بود و در سوی دیگر ناامنی اخلاقی، اعتیاد، فحشا و انواع بزه و کجرفداری و آسیب اجتماعی پیامد این وضعیت و آشفتگی در نظامهای ارزشی جامعه تعارضهای هنجاری بود که روحیات و خلقیات اجتماعی را تخرید میکرد انقلاب، از بهبهه این تعارض ها سر برابرد.